زمان فصل پنجام برژنف ارتش را میرانجاند ژوریس مدودف در کتاب اندروپوف زندگی نامه جانشین برژنف اظهار می‌دارد که به گمانه وی ارتش از برژنف سرخورده بود زیرا او ادعاهای مبالغ آمیزی درباره قهرمانی خود در جنگ جهانی دوم دو بیان می‌کرد و شخصاً به خودش مدال می‌داد مسلماً فرماندهان عالی رتبه جنگ از اقراق درباره نقش برژنف در جنگ رنجیده خاطر شده بودند آنها اطلاع داشتند چه چیزهایی برای کسب این مدال ها لازم بود و هنگامی که برژنف به خودش نشان پیروزی اعطا کرد عمیقاً رنجیدند چون این نشانی فقط به آن دسته از فرماندهان میدان جنگ اعطا می شد که در یک جبهه یا سراسر جبهه ها با موفقیت نقشه نبرد گسترده طرح می و به اجرا می وقتی وی به خودش چنین نشانی داد از ارزش های جنگی کاست. دروغین دموکراسی. نقش حزب کمونیست در حکومت اتحاد شوروی تعمدن مبهم بود. ماشین تبلیغاتی شوروی در قالب اخبار رادیو و تلویزیون کمک می‌کرد که افسانه استقلال حزب از دولت پی در پی تکرار شود. ایگور لوک در مقاله‌ای با عنوان بخش آمریکای شمالی رادیو موسکو برگرفته از کتاب تصویرسازان جدید تعلیف لادیسلاو بیتمان شرح می‌دهد که چگونه رادیو مسکو می‌کوشد تصویر نادرستی مبنی بر شواهت دولت اتحاد شوروی با دموکراسی غربی عرضه بدارد در واقع تمام بخش‌های خبری بخش آمریکای شمالی رادیو موسکو با اشاره به دولت شوروی آغاز می شود شنونده اخباری می شنود درباره وجود 1500 نماینده در مجلس اتحاد جماهیر شوروی دولت پارگی اوقات اشاره به وجود مباحثهای جدی در آنجا می کند که تصادفاً پیش از پایان کار مجلس روی داده است این مشاهدات ممکن است ناچیز و بی اهمیت جلوه کنند ولی باید در نظر داشت که تمام نیروهای تصمیم گیری در اتحاد شوروی به دست ارگانهای مختلف کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی سپرده شده است. نخستین رسالت سازمانهای دولتی مانند شورای عالی و هیئت وزیران اتحاد جماهیر شوروی فقط آن است که بر اجرای دستورهای حزب نظارت کنند. دومین هدف دولت شوروی الغای این خیال خام در دنیای خارج است. که اتحاد شوروی کشوری است کم و بیش مشابه کشورهای دموکراتیک غربی